وصل پنجم شام شنبه شبهای پنسی همیشه قضیه آبرومندانی مثل استیک بود هزار دلار شرط میبندم فقط برای این استیک میدادن که خیلی از پدر مادر و یک شمبها میومدن مدرسه و این آقای ترمر با خودش فکر میکرد که حتما مادر از بچهاشو میپرسن مثلا هم شام چی خوردی؟ اونا هم جواب میدادن استیک چه استیکی؟ باید میدیدی چقدر گند بود یه گوشت سفت خشکه یخ زده که به زور از هم وامی شد کنار دستش هم تاپال پوره سیب زمینی لجم میذاشتن و برای دسرم کنسرو سیب کوفتی میدادن بهمون. که البته هیچ کس نمیخورد غیر از بچه های سال پایینی که مخشون تعطیل بود و ست البته آقامون اکلی که هرچی دم دستش میومد اومد می خورد. خوب شد که از نارخوری زدیم بیرون ده به برف نشسته بود رو زمین و هنوزم دوش میبارید. بارید قشنگی شده بود ما هم گوله برفی درست کردیم و حسابی از خجالتم در اومدیم گوله برفی ها رو پرت می کردیم طرفا آره آره بچه بازی بود ولی خب حال می داد. از اونجایی که با کسی قرار مداری نداشتم به رفیق مال بروساد که از برابچه های تیم کشتی بود گفتم با اتوبوس بریم آگرستان همبرگر بزنیم گفتم شاید سینمایی هم رفتیم هیچ کدوم دوست نداشتیم شنبه شب و بیکار باشیم از مال پرسیدم اشکالی نداره اکلی هم با بیاد؟ میدونستم که بند خدا اکلی شمب شب و کاری نداشت جز این که مال توی اتاقش جوششو کنه. مال گفت خیالی نیست ولی خیلی هم حال نکرد، زیاد از اکلی خوشش نمیومد. بی خیال اصلا، هردو دومون رفتیم توی اتاقامون تا لباس بپوشیم وقتی داشتم کفش لاستیک ما پام میکردم، با داد از اکلی پرسیدم دوست داره بیاد سینما یا نه از بین پرده هایی شنید، ولی درجا جواب نداد، جونش در میامد بخواد درجه جواب بده بالاخره از لوی پرده ها بیرون اومد و وایستاد لبه همون با پرسید به من کی قرره بیاد همیشه باید بدونه کی از کی نیست باور کن اگه وسط دریا کشتیش غرق می شد و یکی با قایق میخواست نجاتش بده قبل از اینکه دست درست کنه و دستی یارو رو بگیره اسم طرف می پرسید. گفتم مال برو سارد گفت اون عوضی باشه الان میام طوری گفت هر کی ندونه انگار آدم حسابی جمعه پنج ساعت طول کشید تا آقا آماده بشه منم رفتم کنار پنجره رو بازش کردم بعد یک گوله برفی درست کردم البته به جایی نزدم میخواستم پرتش کنم سمت ماشین گوشه خیابون ولی بی خیال شدم ماشین تر و تمیز و سفیدی بود حیفم اومد اومدم بزنمش به شیر آتش نشانی ولی بازم حیفم اومد آخر به جایی نزدمش فقط پنجره رو بستم و با گله برفیه دستم توی اتاق دوره افتادم و هی فشارده ترش کردم تا وقتی با اکلی و بروسارد سوار اتوبوس شدیمم شدیم هم توی دستم بود راننده اتوبوس در رو باز کرد و مجبورم کرد بندازمش بیرون گفتم که خیال ندارم تو سر کسی بزنمش ولی باورش نشد آدم ها هیچ وقت حرفتو باور نمی کنن بروسارد و اکلی فیلمی ها که پخش می شد دیده بودن و خاطر همین همگی رفتیم همبرگر زدیم و پینت بال بازی کردیم و بعدش هم برگشتیم پنسی. برایم مهم نبود که نشوت فیلمو ببینیم. لا بود یکی دیگه از همین فیلم های گند و کثافت کمدی بود که کری گرانٹ بازی میکرد تازه قبلا با این بوروسارد و اکلی سینما رفته بودم. دوتاشون به مسخره ترین چیزها هم علی که می‌خندند. حال نمی‌کنم تو سینما کنار دستشون بشینم. ساعت یه نه رسیدم خوابگاه بروسارت بعد جور اهل بیریجه رفت ببینه کسی رو پیدا میکنه که باش بیریج بازی کنه اکلیم محص تفنن تلپ شد اتاق من فقط این بار جایی این که بچین روی دسته صندلی استرد لیتر روی تخت من دراز کشید و سر مبارکش رو صاف گذاشت وسط بالشتم صداشم یک نواخ کرد و شروع کرد جوششو رو تره کند این لحن یک نواختی که میگرفت واقعا حال به همزن بود صد جور نیشو کنای زدم بلکه گورشو گم کنه نه اما لنتی از جاش جمع نمیخورد با اون صدای یک نواخت مزخرفش. یک ریز از اون دختره میگفت که تابستون سال پیش باهاش بوده اون هم که قبلا صد بار تعریف کرده بود هر بارم یه جورای ماجرا را عوض می کرد من که میگم تا با حال با اهدی نبوده مطمئنم همش لافه. ولش کن. هرطوری بود بهش فهموندم مجبورم برای استرس لیتر انشا بنویسم و بعد گورشو گم کنه تا بتونم تمرکز کنم. بالاخره جمع کرد بره ولی همیشه اکلی لفتش میداد. تا رفت سریع پیجامه‌مو ردوشامم و پوشیدم و کلاه و سرم گذاشتم. بعدش شروع کردم انشا نوشتن. مشکل اینجا بود که اصلا نمیتونستم اونطوری که استرد لیتر خواسته بود خونه و اتاق و اینجور چیزها رو توصیف کنم. زیاد اهل توصیف اینجور جور نیستم. این شد که از دستکش بیسبال برادرم عل نوشتم. دستکش بیسبال سوژه خوبی بود برای توصیف. آره آره خیلی خوب بود. اونم اون دستکش توپگیری دست چپ. برادرم چپ دست بود. چیزی که میشد توصیفش کردیم بود که همیشه جیب و انگشت و همه جا شعر می نوشت. با خودکار سبزم می نوشت. می نوشت تا موقعی که توی زمین و مشغول بازی نیست با همونا سرگرم شه. برادرم مرده. سرطان خون گرفت و تو شهر مین مرد. اجده جولای 1946 اگه میدیدیش حتما باش حال می کردی. دو سال از من کچکتر بود ولی پنجاه برابرم هوش داشت خیلی باهوش بود معلماش همیشه برای مادرم نامه می نوشتن و میگفتن که چقدر از داشتن دانش آموزی مثل ال خوشحالند راستش همچین بیرو هم بیرانه حرفشون درست بود تازه ال نه تنها با حوشترین فرد خانواده که ماهترین ما هم بود هیچ وقت از دست کسی ناراحت نمیشد. شد آدم های مغرمز معمولا زود جوش می ولی الب با اینکه خیلی هم مغرمز بود اصلا این طور نبود بهت میگم چجور آدم مغرمزی بود از ده سالگی گلف بازی شروع کردم یادمه یه بار تابستون موقعی که دوازده سالم بود وسط زمین پیش خودم احساس کردم اگه همین الان رو برگردونم، یه هایی پشت سرم میبینمش همین کارو کردم رو دیدم آقا با دوچرخش پشت نرده ها دور تا دور زمین نرده کشیده بودن ال اونجا اونجا بود نشسته بود و داشت تماشا میکرد همچی مغرمزی بود خداش بچه خیلی ماهی بود گاهی سرمیز شام همچی می‌خندید که میگفتم الان ار روی صندلی بیفته زمین سیزده سالم بود که بردنم پیش روانکاف چون تمام شیشه های شکسته بودم حق داشتم ببرنم دکتر آره آره حق داشتن شبی که المرد توی گاراج خوابیدم و با مش تمام شیشه ها رو خورد کردم تازه بخواستم شیشه های ماشین استعیشنی هم که اون سال تا خریده بودیم بشکنم ولی دستم بد خونی مالی شده بود و دیگه نمیتونستم کار احمقانهی بود. قبول دارم کارو بدی کردم اصلا تعادل نداشتم هیچی دست خودم نبود تو که الان نمیشناختی، هنوز وقتی بارون میاد گاهی دستم درد میگره و دیگه نمیتونم خوب مشتش کنم یعنی محکم نمیتونم مشتش کنم ولی مهم هم نیست خبر مرگم نه جراهم نه ویالو نیست و نه چیز ای این انشایی بود که برای استردلیتر نوشتم راجب دستکش دستکش بیسبال ال همروم بود توی چمدونم به خاطر همین درش آوردم و از روی شعرهی که روش بود توی انشا نوشتم فقط اسم الو عوض کردم تو کسی نفهمه برادر منو نسبتی با استردلیتر نداره از نوشتنش همچین حال نکردم ولی متن دیگهی هم به ذهنم نمیرسید که توصیفی باشه در ضمن زم... دوست داشتم درباره این موضوع بنویسم. یه ساعتی وقتم رو گرفت چون به ماشین تحریر داغون لیتر عادت نداشتم. تازه مدام حروفش به هم میریختن. ماشین تحریر خودم رو به یکی از بچه‌های خوابگاه قرض داده بودم. حدود 10 نیم تمامش کردم. خسته نبودم از پنجره یکم به بیرون نگاه کردم. برف بند اومده بود ولی هر از گاهی صدای ماشینی به گوش می رسید ماشین روشن نمی شد صدای خورخور اکلی هم روی اون بود صدا مستقیم از لای پرده همون می اومد. اکلی سینوساش مشکل داشت و موقع خواب درست نفس نمی کشید هرچی ایراد تو دنیا بود این بابا یه جا داشت مشکل سینوس و جوش و دندون خراب و بوی گند دهن و ناخونای کج و کل و هرچی که فکر کنی ای لازم بود دلت برای همچین مادر به خطای احمقی بسوزه.